به مدرسه رسید. سردر آن تابلو نصب شده بود. به زحمت توانست نوشته روی آن را بخواند. مدرسه راهنمایی پهلوی. بالا سر تابلو پرچم بلندی بود که رنگهایش توی تاریکی شب مشخص نبود. به در بزرگ آهنی نزدیک شد و با کف دست چند بار به سینه آن زد. چارچوب‌ها لغ بود. همه جای در میلرزید. از این همه صدا جا خرد و عقب رفت. انگار در همچنان میلرزید. کمی بعد صدای سرفه مردی از آن سوی در شنیده شد و بعد صدای پاهایش بعد در باز شد و خودش را نشان داد قد کوتاه بود با ابروهای پرپشت و چهره عصبی. هان سلام میبخشین من با معلمی که مشم و صداش میزنن کار داشتم هان چی گفتی؟ گفتم معلمی که اسمش مشم و اقلیه. اهل تبریزه آهان تموم شد مهشم و اغلی یختی. ممرو لولو برد. یعنی چی تموم شد؟ اول بگو ببینم چه کاره ای؟ فامیلی، همکاری، دوستی، چی هستی اصلا؟ دوستشم. میخوام ببینمش. نزدیکتر آمد. دهانش را برد چسبان بیخ گوش اسماعیل به سلامتی دستش و دستبند زدن از اینجا بردنش. شما هم بهتر از همون راهی که اومدی تشریف ببری. دستبند؟ نمیدونین چرا؟ اونو دیگه فقط خدا عالمه من اون چیزی رو که با این دو چشم دیدم گفتم و تو هم از من نشنیدی. حالا هم اگه از من میشنوی اینجا نمون اصلا تو ده نمون این روزا سک صاحبشو نمیشناسه این را گفت و عقب عقب تو رفت و در را به روی او بست لولاهای لق در باز هم به هم خوردند و لرزیدند و بعد آرام گرفتند اما دل اسمایل همچنان می لرزید و می لرزید. حتی زانوهایش هم. میخکوب درماند، احساس کرد یک دفعه زیر پایش خالی شد و افتاد توی ای که به نظرش قد یک چا، گود بود و سرد و تاریک. این همه راه را به هوای دیدن مشم و آمده بود. آن معلم تبریزی برایش یک کتاب قطور و خواندنی تاریخ بود. مثل ارگ تبریز، زخمی تیر و تبر و پر از نقل و روایت تلخ و شیرین. البته بیشتر تلخ و ناگوار، اما همه آکنده از عبرت حالان کتاب قطور و گرانقدر در قفسش نبود. ربودو و یغما برده شده بود. دستبند بر دست هایی زده شده بود که سالها بر سینه ی تخته کلاس واجه واجه شعور به فرزندان روستای کوه پای آموخته بود. اکنون او نبود. اسمایل بود و ترس و لرز و یک روستای مانده در پای کوه که خانههایش از سرما کس کرده و پشت به پشت هم چسبیده بودند تا گرم بشوند. میدانست که شبانه نمیتواند به مشکین شهر برگردد باید آنجا بماند اما در کجا در کدام خانه کدام سرپناه کسی را نمی شناخت از همان کوچه تنگ رو به پایین برگشت ولی نه با عجله بلکه قدم زنان و تماشا کنان شاید کسی سر راهش در بیاید و او بتواند بگوید که غریب و بیجا و مکان و خواهان سرپناهی تا همان شب در آنجا بیتوته کند و صبح راهش را بکشد و برود به مشکین شهر مردم سایوا رو بی صدا می خزیدن توی خانه و تنها صدای بسته شدن درها به گوشش می رسید و به او میفهماند که غریب است و ناشناس از همان تنگی که آن پیرمرد صاب دست به آن گفته بود تنگ رو به پایین سرازیر شد موقع بالا آمدن به سفارش پیرمرد به راست و چپ نپیچیده بود بلکه راه راست را بالا آمده بود اما حالا که داشت پایین می رفت، اگر همچنان راست می رفت، سر از حاشیه ده در می آورد و دشت خفته در زیر برف یخ. اولین کوچه ای که از تنگ منشعب می به سمت چپ می پیچید. او هم پیچید. کمی رفت، چند ستون نور کمرمق را دید که از پنجراهای مسجدی به بیرون تابیده بود. به میدان ده نزدیک شد، به مسجد رسید. از در چوبی آن به داخل نگاه کرد. نور از یک چراغ زنبوری که با تناب بلندی از سقف آویزان بود، بیرون میتابید. چند نفر از ریس سفیدهای ده به طور پراکنده در گوشه و کنار شبستان کوچک مسجد در حال نماز خواندن بودند. فکرش را هم نمی‌کرد در آن قربت و دلتنگی سر از چنین جایی در بیاورد. کنار شبستان یک شیر آب و چند آفتابه پلاستیکی بود. یکی از آنها را پر کرد و جورابش را در آورد. بوزو گرفت و رفت توی شبستان. بوی خوشایندی در فضا محلق بود، چند بار نفس عمیق کشید، نرمی فرشهای دستباف دست باف را زیر پایش احساس کرد، و گرمای آرامبخش بخاری چوبی را که آتشدانش پر از کندههای درخت و شاقه خشک بود. مهری از روی سکو برداشت، رفت گوشه ای ایستاد و نمازش را شروع کرد، بعد از آن همه کشمکش با گرگ و سرما و تحمل تنهایی غربت حالا احساس امنیت و آرامش میکرد. هر که نمازش تمام میشد، مهر را روی سکو می‌گذاشت و از شبستان خارج میشد. نماز اولش تمام شد. دو سه نفر بیشتر نمانده بودند که آنها هم در حال خواندن آخرین رکعت‌های نمازشان بودند. روبروی پشت به مهراب، منبر چوبی کوتاه و پهنی بود که روی پله‌های آن پتو انداخته بودند. پله بالایی تشکچه داشت. پشت سرش کمد چوبی بزرگی بود که تشت بزرگ مسیح مخصوص روز اول محرم روی آن بود اطراف تشت چند کاسه و شمع سوخته دیده میشد. تعدادی بیرق کوتاه و بلند چوبی با شالهای رنگی کنار هم به دیوار تکه داده شده بود نمازش که تمام شد نشست و به کمد تکه داد آخرین نفر هم مهر را بوسید و جایش گذاشته در حالی که با صدای بلند پشت سر هم سلام می داد و سلوات می فرستاد، رفت دیگر کسی در شبستان نمانده بود تنها از بیرون صدای پا می آمد. شاید کسی آفتابه را پر می کرد. شاید هم وضو می گرفت. نفهمید. خودش را کشان پشت کمد و لابلای بیرخ پنهان شد. شلال شال های رنگی صورتش را نوازش می کرد. صدای گرگر سوختن کنده های درخت از آتشتان بخاری شنیده می شد. در چوبی شبستان جیر, جیر کنان باز شد. مردی صرف کنان آمد تو. کمی بعد نفس چراغ زنبوری را گرفت و شبستان در تاریکی فرو رفت. بعد هم در با سر و صدا بسته شد. کسی لخ, لخ کنان کفشش را رو روی زمین میکشید. سپس صدای صرفه هایش آمد. هیزم داخل آتشتان هنوز میسوخت و گاهی صدای جرقه ای بر می خواست. حالا هم اگر او میخواست از شبستان بیرون برود نمیشد. دیر شده بود. دلشوره داشت اما بیشتر خوشحال بود تا نگران. در هر حال آنجا خانه خدا بود. خانه غریبان و در راه ماندگان. بنابر او مستحق بیتوت در آن خانه بود از پشت شلال شال ها بیرون آمد سکوت و سیاهی در هم تنیده بود و شب شلای تیره خود را بر سر روز ساکشیده بود فقط گاه گداری صدای پارس سگی از دور دست می آمد. به بخاری نزدیک شد گرم بود و سرخ کنده ها هنوز می و هیزم ها می گداختند ساکش را زیر سرش گذاشت و نیمتنه اش را رویش کشید پشت به بخاری خوابید گرمای تبداری کمرش را مالش می داد. چشمهایش را که بست دندانهای تیز و بلند گرگ را دید. کف از گوشه لبهایش زمین می چکید. همان نگاه سهمگین و خلندهاش را به او دوخته بود و هر لحظه نزدیک می شود. از ترس پلکهایش را باز کرد و جا, به جا شد. خسته بود. خسته ی ساعتها نشستن توی اتوبوس. خسته پیاده آمدن از مشکین شهر به باللیجا. خسته از کشاکش با گرگ و بعد خبر دستگیری مشموغلی، با این حال فرش مسجد برایش حکم نرمترین و راحتترین ترین ها را داشت. یادش نماند که چه وقت به قرر خوابی امیق و همه چیز از ذهنش پاک شد. وقتی بیدار شد، احساس کرد گردنش درد گرفته است. سرچرخونده به سخف نگاه کرد و بعد به پنجره های شبستان که ستاره ها از پشت شیشه های می زدند. باد قریبان سرور پنجره میکوفت و با بغز هو کشید تا بلکه راهی به درون پیدا کنند جا, جا شد برگشت به سمت بخاری. آتشدان خاموش شده بود شبستان سرد بود کلاهش را از توی ساک درآورد و کشید روی سر و گوشهایش. دست و پایش را زیر تنش جمع کرد و مچاله ماند هنوز خوابش نبرده بود که صدایی شنید. صدا از طرف منبر میامد. کسی آن پشت خُرر پوف میکرد. آرام بلند شد و نشست. این بار با دقت گوش داد بلکه اشتباه شنیده باشد. اما درست شنیده بود. صدای خررو پف بود. مدتی همچنان گوش داد. صدا مردانه، یک نواخت، یک دست و یک غاره میآد. کمی بعد تکراری و مل آور شد. خواست برگردد به قهر همان خوابی که پیش از بیدار شدن در آن غرق بود. اما نتوانست. خواب از سرش پریده بود. مرد پشت من گاهی به جای خور و پف مثل اسف شیهه میکشید کم, کم نگران شد و حتی ترسید چه کسی میتوانست آن وقت شب در مسجد پنهان شده باشد گدا دزد قاتل یا کسی که مثل خودش غریب بود به سرافت دیدن صاحب آن صدا افتاد از یا بلند شد و آهسته به طرف منبر رفت آرام پشت آن پیچید مردی بدون بالش و روانداز در فاصله میان مهراب و منبر خوابیده بود چند نیم و پالتو روی هم پوشیده بود و برای همین سرش به دشواری به زمین می رسید. ریش سفید و بلند آشفته ای داشت و دهانش میان آن همه مون گم بود به هر حال صدا از همانجا جا در می آمد. یک نفس شیه می کشید. گاهی صدایش نیمه های راه در گلویش گیر می کرد و بالا نمیامد. همان موقع با گررش بلندی راه نفسش باز می شد و صدا می پیچید توی شبستان و شاید هم توی های ساکت روستا مرد را با خُرپوف‌هایش به حال خود رها کرد و برگشت پیش بخاری تا دوباره بخوابد دراز کشید. پلکایش را محکم به هم فشر تا شاید آن خواب شیرین دوباره برگردد پشت پلکایش، اما برنگشت. مرد شبستان را روی سرش گذاشته بود. این بار سبکتر از جا بلند شد و با سرعت خود را بالای سر مرد رساند. خم شد و شانه‌های او را تکان داد. ابتدا شیهی مرد قد شد، بعد صداهای معلق و نامفهومی از گلویش درآمد. سپس شروع به جویدن حجم خالی و که دهانش کرد سرانجام پس از یک آه عمیق و طولانی چشم‌هایش را گشود و نگاهش را دوخ به صورت اسماعیل خیره ماند گویا او را در خواب میدید چند بار پلکایش را محکم باز و بسته کرد و بعد با شتاب بلند شد و نشست و در حالی که زیر لب تند و تند بسم الله می گفت، خودش را عقب کشید و به دیوار مهراب تکه داد و با ترس و لرز گفت چی چی میخوای از جون من؟ پدر جون از جون تو چیزی نمیخوام داشتی خفه میشدی؟ گفتم به دادت برسم همین خفه؟ خفه؟ آره داشتی میشدی؟ بیشتر خودش را به دیوار چسبند و چشمهای خابالودش ورگلوم بید آنقدر که کم مانده بود از حدق بیرون به جهند زبانش آشکارا بند آمده بود نه نه تو رو به اون چه میپرستی به پیر به سلطان سوالان دارو ندارم مال تو همه رو به پات میریزم. فقط با من کار نداشته باش دست از سرم بردار. چرا قسم میخوری پدر؟ من که با تو کاری ندارم. داشتی خفه میشدی بیدارت کردم. بد کردم؟ پیرمرد هر دو دستش را به علامت ممانعت جلو آورد. انگشت‌هایش میلرزید. ببین. گوش کن چی میخوام بگم؟ تو رو قسم میدم به صاحب این مسجد. چی چی هستی تو؟ خندهش گرفت خب دست بزن ببین چی اینکه این که پرسیدن نداره و دستش را جلو بارد تا دستهای پیرمرد لمس کند اما او فریاد کشید و مانع شد تا نگی نه نه نمیشه تو تو جن نی. جن و چنان با پا به منبر فشار آورد که صدای چفت و لولای آن بلند شد و تکان کرد پدر آمور چه خبرته منبر رو انداختی؟ باشه بهت دست نمیزنم نه باید بگی میخوام بدونم. از کجا اومدی؟ بابا جون منم مثل همه ی اومدم. اول کفشامو در آوردم. بعدم با پاهام اومدم تو نمازمو خوندم. مثل همه ی خسته چشمامو بستمو خوابیدم. درست مثل تو. یعنی تو آدمی؟ اگه باور میکنی آره. پاشناد یعنی سوم ندارن؟ میخوای نشون بدم که سوم ندارن؟ نشون بده ببینم. جوراپایش را در آورد و پاهایش را به نوبت به راست کرد و جلوی چشمه او گرفت. و پاشنه‌هایش را نشان داد دیدی؟ حالا خیالت راحت شد که سم ندارم؟ اگه راست میگی که آدمی به پای این منبر قسم بخور ببینم اسمایل دستش را گذاشت به سینه منبر خب من آدمم نه بگو من نه جنم نه آل اگه دروغ گفته باشم بشم لال این بار دستش را گذاشت پای منبر و گفته های مرد را تکرار کرد بعد گفت حالا باورت شده یا به تشت و شال هم قسم بخورم نه نه لازم نیست دیگه باور کردم که آدمی خدا رو شک که باور کردی آدمم خودت چی؟ این چه سر سرووزیه؟ مرد خودش رو از کنج دیوار و منبر بیرون کشید و بابی میلی گفت نپرس برادر قصهش درازه اگه از حالا تا طلوع آفتاب هم بشینیم و من بگم و تو گوش بدی بازم تموم نمیشه همینقدر بگم که درویش مسکینم روزا ده به ده و آبادی به آبادی میرم شبا هر جا که رسیدم سرم و میذارم رو زمین و میخوابم امشبم قسمت بود اینجا بمونم در حین گفتن آرنجش رو به زمین تکی داد آرام دراز کشید و چشمهایش رو بست معلوم بود که میل به گفتن ندارد و میخواهد بخوابد اما باز هم سرش به زحمت با زمین مماس بود از بس پالتو بالای هم پوشیده بود حالا که میخوای بخوابی پس یه چیزی بذار زیر سرت خروپف نکنی اینطوری راحتم. ولی من ناراحتم نمیتونم بخوابم. تشک را از روی آخرین پله من بر برداشت و تا کرد داد به پیرمرد و گفت: این نمیذاره سرت بیفته زمین راحت میخوابی. مرد بیمیل تشک را کشید زیر سرش. چندبار روی آن جابجا شد و زیر لب چیزی گفت. اسمیل برگشت به جای خود. تازه چشمهایش گرم شده بود که با صدای شیه اسبوار مرد دوباره بلند شد. نگاهش کرد، توشکچه را انداخته بود کنار و همانطور طور که دوست داشت خوابیده بود. صبح با صدای پارس سک ها از خواب بیدار شد. از پنجره به بیرون نگاه کرد. آسمان شیری بود و منتظر سرزدن خوشید. هنوز برای نماز وقت داشت، به وزوخانه رفت. شیرها به زحمت باز می شدند، یخ زده بودند. با این حال وضو گرفت و برگشت. اگرچه چه در آتشدان بخاری گرمایی نمانده اما کنار آن با آرامش نمازش را خواند آفتاب بالا آمد و بر شاخه‌های خشک و شبنم‌زده‌ی درخت‌ها تابید کمی بعد پایینتر لغزید و سینه کاهیلی دیوارها و خانه ها را روشن کرد از جا بلند شد لباسهایش را پوشید و ساکش را برداشت نگران بود که در شبستان قفل شده باشد خواست مرد را ویدار کند اما او همچنان خواب بود و نیم بند نفس می به طرف در رفت، چفت بود. دستگیره را کشید، در باز شد. بیرون رفت و دوباره در را کشید، مثل اول چفت شد. خانه ها در سرما کس کرده بودند. در کوچههای های باریک و یخزده، کسی دیده نمی شد. آهسته حرکت کرد. خاک و برف یک جا یخزده مثل سنگ سفت شده بودند. می ترسید در شیب‌های ناگهانی کوچه لیز بخورد و روی زمین سرد پهن شود. آرام قدم بر برمی‌داشت. کلوخ‌های سفت و یخزده برف زیر پایش قِرچ‌قِرچ خرد می‌شدند. گاهی گاوی ماغ می‌کشید و مرغی که در لانه گرمش تخم گذاشته بود قُدقُد می‌کرد. یا سگی که تازه از جای امن زمستانیش بیرون آمده بود، بدنش را کش می‌داد و باد توی گلویش میانداخت و با ناز دوزمه می‌کشید. به خرمنجا رسید، آفتاب با خیال راحت خود را روی برف ها پهن کرده بود و آرام آرام آن را گرم می کرد تا آب کند. پشتش را به دیوار کاهگلی تکیه داد و چشم به راه ماند. شاید کسی به قصد شهر بیرون بیاید و همراهش بشود. چشمش از وسعت دشت و تنهایی خودش ترسیده بود. این بار اگر گیر گرد میافتاد معلوم نبود جان سالم به در می برد. رهای دیروز شبیه معجزه بود. میدانست که کمتر کسی حرفهایش را باور خواهد کرد. تصمیم گرفت تا همراهی پیدا نکرده قدمی از ده دور نشود. پای دیوار چوبازنه زد و مثل پیرمردهای دهاتی خشتکش را به گرمای خورشید داد. هنوز به زانوهایش فشار نیامده بود که صدای بلند بوغلمونی را شنید. حیوان می کشید صدا رفته رفته نزدیکتر میشد. فهمید که کسی با بوغلمون به آنجا میآید. بلند شد و ایستاد کمی سرش گیج رفت و هزاران دانه ریز و رنگین پیش چشمش در هم لولیدند مردی که بوغلمونی را زیر بغل زده بود از انهنای کوچه پیچید و به طرف او آمد. بوغلمون درشت بود پاهایش به زانوان مرد می رسید و قبقب سرخش به لاله گوشش می سایید. حیوان بیقرار بود بال و پر می زد. میخواست خود را از چنبره بازوی مرد رها کند و برگردد پیش سر و همسرش، اما نمیتوانست. برای همین همزورش را داده بود به صدایش و قلقل و قادقاد را هنداخته بود.